جلسه چهار قواعد فقه و سیاستم بیست و میهر 1400 بحث تکمل بحث روش استنباط قواعد و معرفی منابع بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد و علی اهل بیت اطاهرین سیم و بقیت الله فی الارضین روحی و روح العالمین له الفضل یک قاعده اگر بخواد کشف بشه ما باید زوابطی براش رعایت بکنیم باید راه شناخت اونها رو پیدا کنیم خب اولین مورد اینه که ما بریم نصوص سریحی که دال بر اونیته اونها رو پیدا کنیم اگر ما نصوص سریع رو پیدا بکنیم در این صورت اون موضوع میتوانه عام مطلق باشه به صورت خیلی فراگیر باشه خب در این صورت یه ای قاعده خیلی فراگیر خواهیم داشت به درد کل فقه مثلا بخوره اما قواعد میتوانن حیطه محدودتر رو پوشش بدن اگر قاعده با موضوع محدودتر ما حریدا بکنیم این مخالفتی و ممانعتی برای تثبیت و اثبات و استنبات یک قاعده کلی نخواهد داشت بلکه اون قاعده نسبت به یک قاعده کلی تر از محدودیتی برخوردار خواهد بود و قاعده رو هیتشو رو محدود میکنه مثلا اختصاصش میده به یک باب اشکال داره در یک باب ما قاعده داشته باشیم خیر. پس اصلیترین روش اینه که ما بریم یک قاعده پیدا کنیم که در جایی ما رو کمک بکنه در بابی کمک بکنه بنابراین در واقع محدودیت نسبی برخی از موضوعات در قوائد در نصوص حاوی قوائد اون دایره اونها رو محدود خواهد کرد نه اینکه که خلاصه اینها رو از اون موارد در واقع اون نصوص اصلا نتوانند بیانگر قاعده باشند خب این راه اول پس ما باید بریم مال شناسایی نصوص عام و مطلق حالا ممکنه در محمول هم قیدی بخوره اینجا چی؟ اگر در واقع محمول هم قیدی برای حکم زد اون اون هم نمی توانه در واقع قاعده رو از قاعده بودن بیاندازد خب حالا نکته اصلی در این مقوله چی بود؟ ما دنبال روایت و نصوص سریح بودیم نکته اساسی اینه که نصوص برخوردار از سراحت و تصریح بر عمومیت مطلق یا نسبی اهمیت داره در واقع باید مورد شناسایی قرار بگیره حالا اون بحث حجیته سند و صدور اونها میتواند در واقع مکمل کشف و حجی خلاصه دستی مکمل بحث استدلالی باشه اما نکته اساسی این بود که از جهت محتوی ما باید بریم دنبال نصوص سریع چرا چون ما می‌خواستیم حکم عام رو پیدا کنیم پس حالا اگر ما روایات عام آیات عام پیدا نکردیم چه باید بکنیم راه دوم چیه اینکه شناسایی نصوص مستلزم عمومیت پس ما محور بحث اول باید کشف اون موارد سریح باشه تصریحات بر امومیت باشه حالا اگه تصریح پیدا نکردیم اما نصوصی پیدا کردیم که مستلزم عمومیت بود این هم قابل قبوله خب حالا این استلزام گاهی قاط به صورت مستقل گاهی اوقات میتونه نه با ترکیب بشه خب این رو هم میتونیم در واقع یک بند دیگه حساب بکنیم در واقع اقامه استدلال با استقلال بر عمومیت یک حکم برای خب یک حکم برای یک موضوع ببخشید برای عمومیت و فراگیری در واقع یک حکم یک فراگیری موضوع یک حکم اینجا ما از استدلال های مختلف استدلال کنیم یه موقع نصوص مستلزمی ما پیدا میکنیم این استلزامش استلزام شفافیه به گونه که ممکنه اسم استدلال برون نذاریم اما بعضی موقع استدلال‌های دور و دراز ممکنه بکنیم اگر نص سریع داشتیم خیلی خوب اگر نصی داشتیم که مصوصه مستلزم عرفی بود در واقع این استلزام در واقع یک نوع استدلاله ولی استلزام اگر اینقدر سراحت حالا ظهور داشت پررنگ بود عرفی بود که قابل تمسک بود در واقع حتی اسم استدلال شاید براش نذاریم ولی واقعا یک در واقع یک استدلال عرف پسند از نصوص می توانیم خلاصه اقامه کنیم در واقع به صورتی ممکن باشه که دیگه عرف احساس نکنه که با مقدمات خارجی ما استدلال کردیم یک, پر... یک استدلال عرف پسند از ظهور نصوص می توانیم در واقع اقامه بکنیم به گونه که دیگه عرف احساس نکنه که در واقع با کمک مقدمات خارجی ما در واقع اثبات کردیم یه مقدار تفتون به بعضی نکات درون متن ممکنه بکنیم ولی برخی موارد نه لذا موارد دیگه مورد سوم اقامه استدلال بر عمومیت و فراگیری اون موضوع حکمه اینجا ما میتوانیم در این استدلال می توان از مقدمات خارجی هم استفاده کرد مقدمات و قرائن و در صورتهای ممکن مقدمه مستقلی باشه قرینه نباشه یک مقدمه مستقلی باشه یا از بعضی مقدمات خارجی استفاده کرد برای که مثلا اون ظهور رو بیان بکنیم در مجموع یک سبقه ممکنه داشته باشه برای اثبات اون امومیت. اینجا به هر حال شکل‌های مختلف رو ما باید امتحان کنیم یک مواردی مثلا شما از ترکیب دو گذاره که در ظاهر ربطی خیلی یک محتوا رو نمیگن گاهی با ترکیب مقدمات متفاوت ولی مربوط به یک موضوع خلاصه شما اثبات عمومیت یک حکم رو میکنید این هم یک طریق یک طریق دیگه ظرافت داره معلوم نیست چقدر هم بتوان به اون تمسو کرد تمسو که به در واقع اینطوری بگیم استقرای موارد مشابه و در واقع استنبات حکم کلیم از اونها اینجا دشواریش این روش از در واقع مبتنی بر امکان کشف حکم کلی از طریق خلاصه استقراست این مبنا رو باید پذیرفت خب استقرای ناقص معمولا نمیتونه به حکم به استنباط و اثبات حکم کلی بی انجامم مگر اینکه در واقع توان به خلاصه به علت حکم به علت واقعی حکم دستیافت یافت اما خیلی از قوائد ببینید در فضای اهل سنت چونان که قبلا اشاره شد از این استقرا استفاده می و در واقع تعمیم نابجای خلاصه استقرای ناقص می توانه به مسابه قیاس به موارد مختلف خلاصه باشه یعنی به یه جای ممکنه یک مورد از قیاس بکنن خب حقیقتی نداره اما در یک جاهای ممکنه استقراو به این مس قیاس به موارد متعدد باشه زن نمیاره ولی این زن فایده داره یا نداره نه معمولا نداره مگر اینکه که واقعا بتوانه علت رو کشف بکنه واقعا بتوانه خلاصه بتوانه اون محتوا رو نشان بده راه دیگر چیه در واقع ما تمسک بکنیم به تنقیه موضوع و حکم رو در واقع بیاییم چنان منقه بکنیم به صورت عرف پسند تعمیم بدیم در واقع استنبات در واقع عمومیت موضوع و الغای خصوصیت در ظاهر در برخی موارد موضوع در واقع موضوع خاص است اما ارف، اما اگر عرف بتواند در واقع خلاصه الغای خصوصیت بکنه چرا میگیم عرف در واقع ما به صورتی الغای خصوصیت بکنیم که عرف بپذیره در این صورت در واقع ما چی گفتیم گفتیم این موضوع این عنوان موضوعیت نداره در واقع این مستاقی است مستاق در واقع موضوع منسوس صرفاً یک مصداق برجسته یا مورد توجه در خلاصه قضیه در روایت در نص مورد نظر بوده در این صورت ما ممکنه این رو بتوانیم القای خصوصیت بکنیم اما همیشه اینطور نیست در تنها در صورتی عرف القاای خصوصیت رو در واقع میپذیره که از تناسبات حکم و موضوع استفاده بکنه یعنی چی؟ در واقع بگه که تناسبات این موضوع با موضوع عام تناسب داره با اون حکم و اینجا مد نظر نباشه و محدودیت نداشته باشه تناسب عرفی بین حکم و موضوع باید اینجا واقعا به چشم بیام وجود این تناسب که به صورت عرف پسند اهمیت داره در واقع خصوصیتی باید عرف در نبینه بگی که اینجا موضوع موضوع واقعی نیست این موضوع موضوع ظاهریه این در واقع مثلا یک مثالی من از موضوعات سیاسی بزنم فرض بگیریم شما در نماز جمعه میبینید که امام جمعه محترم اصله به دست میگیریم حالا برای رفع خستگی عزم می‌کنم این پسر کوچیک ما با فاصله چند ماه چند سال قبل در نماز جمعه یک سوال تکراری رو مطرح کرد بار اول من براش توضیح دادم گویی در ذهن شریفش نبود در موارد اینچنینی در واقع ما می‌بینیم یک حکم ظاهر یک موضوع ظاهری داریم که در واقع باید از اون فراتر بریم ما باید از اون موضوع ظاهری فراتر بریم و به کشف موضوع واقعی در واقع برسیم من دو دوتا مثال ارز میکنم مثال اول ببینید در نماز جمعه این پسر کوچیک ما براش این مسئله دوبار پیش آمد به ارز چند ماه یک سوال تکراری پرسید جوابی که من دفعه اول دادن گویا براش خوب روشن نشده بود دوباره بعد از چند ماه در نماز جمعه که بودیم اونو پرسید آیا این توفنگ که در دست امام جمعه محترمه باید گلوله داشته باشه یا نه؟ آیا باید سرنیزه داشته باشه یا نه؟ این برمی گرده به اینکه که اون نصوصی که مربوط به این موضوعست رو ما چجور تحلیل کنیم، چجور بفهمیم؟ اگر یا مثلا در زمانهای قدیم شمشیر ممکنون به دست بگیرن، ای به دست بگیرن خب نیزهی که پوشیده نیست ولی مثلا شمشیر می تواند پوشیده باشه در قلاف باشه یا نه از قلاف درآمده باشه. اگر ما بگیم که خود اون شمشیر موضوعیت داره. حرفمانم باید خلاصه شمشیر از نیام برکشیده باشه این موضوعیت داشته باشه و مثلا کلمه شمشیر رو اصللح آمده باشه تو متن روایت مثلا شما دیگه نمی توانید بگید که اون در واقع شمشیر در نیام هم کافی است اگر حالت خاصی از موضوع در واقع موضوعیت داشته باشه شما نمی توانید از اون فراتر برید و موضوع رو آم بگیرید در واقع خب مثلا اگر شمشیر آخته باشه دیگه نمیتوان اون رو شمش شامل شمشیر در نیام گرفت اگر فقط شمشیر مد نظر باشه دیگه شما نمیشه نیزه به دست بگه اون شمشیر موضوعیت داشته باشه شما نمیتوانید نیزه بدید به دست امام جمعه نمیتوانید توفنگ بدید نمی توانید پیربار بدید فقط شمشیره که موضوعیت داره اما اگر نه حالا یه جایی ممکنه تعبیر آم به کار رفته باشه مثل اسلحه سلاح خب دهتام استاق میتوانه داشته باشه اما اگر شمشیر آمده باشه ولی شمشیر موضوعیت نداشته باشه در واقع در برخی از موارد موضوع خاص در نصوص لحاظ شده اما در واقع همون عنوان به همان صورت به ما هوام به ما هو و هوام خلاصه مورد نظر نیست لذا از این رو می توان چه کار کرد می عنوان رو عنوان موضوعی واقعی دانست در اما در برخی از موارد در واقع اینگونه نیست همان موضوع خاص همان عنوان موضوعی خاص در واقع موضوعیت داره تو موارد مورد قبلی در واقع موضوعیت نداشت به تعبیر دیگه اونجا عنوان مزبور تحریقیت داشت تریقیت به چه عنوانی داشت؟ به عنوان آنتر داشت اونجا عنوان عامتر میتوانه در نسل نباشه شما اینجور میفهمید. میگید آقا این که گفته شمشیر خیلی منظورش فقط شمشیر نیست میتوانه نیزه باشه میتوانه اصلاعه باشه پس موضوعیت نداره شما چه کار کردید الان رو تعمیم دادید اما تعمیم به شرط که با ت... از طریق با تناسوب حکم و موضوع و قرآن عام و خاصه در واقع کمک بکنه اما اگر شما اینجوری بفهمید در, در قع بر اساس فهم عفی خلاصه همون عنوان خاص اگر موضوعیت داشته باشه در این صورت شما نمی توانید کار کرد نمی توانید اون عنوان رو تعمیم داد بنابراین شما خلاصه دچار مانع خواهید بود نمیتوانید از اون یک موضوع آم بتراشید و پیدا کنید بعدم بگید حکم به همه این موارد میخوره ببینید مثلا اونجا شما میگید که سلاح هایی باید گلوله داشته باشید یا نه اگر عنوان اصلی حالا میگیم که آقا ما تأمین بدیم به چی تعمیم بدید کشف عنوان واقعی نیازمند دقت روش شناسانه است یعنی چی؟ چه وسا؟ در واقع باید دید که مثلا اونجا شمشیر آیا حکایت میکنه از آمادگی بلفل یا آمادگی نمادین اگر در نماز جمعه آمادگی نمادین به طور نمونه و به طور مثال آمادگی نمادین مد نظر باشد لازم نیست که حتما شمشیر خلاصه به صورت کامل خلاصه بگیم آماده باشه سیغل خورده باشه خلاصه سیغل خورده باشه یا مثلا یا از نیام نیام برکشیده باشه یا لازم نیست که خلاصه در خشاب اسلحه حتماً گلوله باشه یا زامن اون خلاصه کشیده شده باشه این چرا؟ چون که شما گفتید میخواد آمادگی نمادین باشه در مقابل اگر آمادگی بلفل مرمد مقصود باشه مرات باشه اینجا خلاصه شمشیر حتماً باید چی باشه از نیام برکشیده باشه گلوله حتماً باید در گلوله باید در خشاب باشه بلکه باید چی باشه گلنگدن کشیده شده باشه چرا؟ چون که اون آمادگی بلفر مد نظره خب پس خیلی پیچیده میشه پس بنابراین یکی از اصلی ترین مباحث در کشف قاعده اینه که شما برید سراغ اناوین سری اگه نشود ممکنه برید شما قلید سراغ لوازم لوازم اون نصوص چیه نصوص مستلزم عمومیت رو کشف کنید اگر از در واقع از نصوص با توجه به اون خلاصه قرائن داخلی با توجه به خلاصه در واقع اون محتوا کشش درونی متن قرائن درون متنی یا قرائن نزدیک نزدیک و خلاصه حافه قرائنی که وجود داره یک استقلال عرف پسند بیاریم که از ظهور که این بحث آخر خیلی به این می نزدیک باشه در واقع القاء خصوصیت رو شما می توانید یه جوری ادامه این بگیرید این مورد دوم یا این که نه اگرم عنوان مستقلی بگیرید شاید از یه جهت بهتر باشه ممکنه الغای خصوصیت یه جوری خلاصه استدلال مثلا نیاز داشته باشه در اینال میتونم جزءون حساب بکنم پس یکی شناسایی نصوص تصریحی عام یکی غیر آم مستلزم عمومیت یه جایی هم خودش الغای خصوصیات میکنید یک جایی ممکن ممکنه برید استدلال بکنید استدلال با کمک عدله مختلف شما میرید استدلال میکنید میگید آقا اینها از این طریق ما میتوانیم خالصه یک حکم آم بیاریم یک شکل است استدلال میتوانه چی باشه؟ در واقع استقرام باشه استقرام یعنی استدلاله ولی استدلال خاص تجمیعیه در واقع تو اقامی استدلال شما ممکنه بگید که آقا یک روایت پنج مورد رو گفته یک روایت دیگه مثلا ده مورد رو گفته بچینید بغل دسته هم یا یک جایی ممکنه فرض بکنیم استدلال عقلی بیارید گاه نه همه جا گاه استدلال عقلی میتواند حالا استدلال عقلی در واقع تام یا به عنوان در واقع خلاصه مکمل حساب بشه میتواند به کشف قاعده کلی بیانجامت منطقه ای این منوط به شرایطشه منوط ای این کشف و استدلال نیازمند در واقع مقدمات فقهی و اصولی خاص خودشه در واقع شما باید کلم و حکم رو داشته باشید قاعده ملازمه یکی از اسلی ترین قواعد اصولی است که در اینجا باید خلاصه مورد توجه قرار بگیره یعنی چی یعنی که ممکنه ما قبولش بکنیم ممکنه قبولش نکنیم تاثیر داره اگه قبولش نکنیم استدلال ممکنه ناقص باشه خب این یه استدلال عقلی تام بود از اون ما گفتیم که استدلال بکنیم استدلال یه جایی با مقدمات شرعی تمام ایاره گاهی در واقع استدلال با تکیه بر مقدمات صرفا شرعی است گاه استدلال میتوانم با تکیه بر برخی مقدمات شرعی و برخی مقدمات عقلی خلاصه اقامه شود اما همه این ها اما همه این موارد نیازمند چیه؟ نیازمند تکیه بر زواوت مربوط به استدلاله یعنی هر استدلال خلاصه شرعی و عقلی کافی نیست پس همه این شرایط باید لحاظ بشه تا ما بتوانیم یک حکم تمام ایار عام به دست بیاریم پس طرق مختلف ممکنه استفاده بشه اینجا ممکنه شما پس خلاصه بحث ما این بود که ما باید از یک روش شناسی خلاصه همواره بهره گیری بکنیم همجور همونجور ای ادعای خلاصه اثبات قواعد بکنیم در دقایق باقی مونده من یه معرفی بعضی منابع رو می‌کنم یه سیری دستمون بیا اجمالاً در این بحث اجمالا می توان در بحث روش شناسی گفت که نگاه اهل سنت در مباحث روش شناسی خلاصه بر یک مشکلاتی داره خلاصه بر زمون غیر معتبر نزد شیعه خلاصه تکیه داره چون که مشکلات دارن اونها خلاصه به ناچار سراغ این رفتن اهل سنت به خاطر محدودیت خلاصه محدودیت نصوص ناگذیر از ناگذیر از تکیه به قیاس قیاس کشف علل خلاصه علل برای اقامه قیاس و همینطور تمسک به استقرای ناقص در موارد بسیاری شدند این مسئله نتیجه چی بوده؟ نتیجه این بوده که خلاصه در نتیجه بسیاری از خلاصه قوائد اونها متکی بر خلاصه تعمیم های خلاصه ناموتبر است پس نتیجه عملی چیه؟ اگر شما دیدید که کتب قواهد در اونها خیلی بیشتر از شیعه استقراب نکنید بله در واقع استنبات استنبات قوائد پرشمار میتواند خلاصه دقدقه میمونی باشه دقدقه مبارک و پرتأثیری در فقه باشد اما نکته اساسی که باید روش شناسی درست رعایت بشه باید ضوابط روش در کشف قواعد به صورت خلاصه جدی و استنباطی و به صورت ضابطه بعض مند خلاصه اساسی باید رعایت شود اما اهل سنت چی در این میان اهل سنت خلاصه کارنامه متفاوتی دارند کارنامه اونها از منظر خودشون موفقه اما خلاصه برخلاف نگاه شیعه اهل سنت در مباحث کشف قوائد روش ها رو سعی کردن به کار بگیرن تمسط به نصوص سریع مستلزمات اینها هست ولی یه گیر اساسی خلاصه اینه که به هر حال مشکل دارند ما هایی که خلاصه مستلزم نص... نصوصه اگه سریح نباشه دلالت بر عمومیت نداشته باشه به اطلاقات تمسک میکنیم مصوصه مستلزم عمومیت در واقع یه وقش مهمشون چیه؟ در واقعه تمسک به خلاصه مطلقات یکی از اصلی چیه راه های کشف خلاصه در واقع قبائد کلیست اما نمیتوان هر مد ادعای اطلاقی رو قبول کرد اما ادعای اطلاق باید اثبات بشه نیازمند خلاصه اثبات و خلاصه ظهور ظهورگیری خلاصه ظابطه منده اهل سنت خلاصه یه مشکلی که اینجا دارند در واقع یکی از مشکلاتشون اینه تعمیم های بیشمار اینو دارند که بخشی از اونا دچار مشکله در واقع یه بخش مشکل اونا اینه که دایره مصادیق در واقع مطلقات رو مصادیق اطلاق در نصوص روایی و قرآنی رو خلاصه بسیار وسیع می دانند خلاصه دارای مصادیق فراوان می و در صورتی که ما یسری از موارد رو قائل نیستیم و فقهای شیعه قائل نبودند در خلاصه شیعه خیلی جوام می‌گفتن بعضی از اینها اون در مقام بیان اطلاق نمی‌دیدند لذا در تمسوک به خیلی از آیات و برخی از موارد در روایات اینها شیعیان فقهای شیعه استفاده اطلاق نمی‌کردند و خلاصه مطلق ندیدند و در مقام خلاصه بیان اطلاق ندانستند در واقع اونها یه سری مسادیق رو گفتن در مقام بیانن و اطلاق گیری کردن اما یه سری مسائل روشی شیعان در مقام بیان ندیدن خب دوستان آرام آرام میخوان خواهد تشریفی من سریع فقط یه چند مورد از کت کتب شیعه رو اگر عرض کنم خدمت دوستان برای معرفی و از این منابع که بسیار از اون منابع هم لزومن قواعد فقهی رو فقط نگفتن بلکه قواعد متعدد دیگه مرحوم ابن سعید هلی هزلی متوفی 701 یک کتابی دارن نوزحت و فی الجمعه بین الاشبای و نزائر مرحوم علامه هلی 25 سال بعد فوت کردن 726 فوت کردن در قواعد الاحکام فی معرفت الحلال و الحرام یه سر موارد رو آوردن که فوقه های متحددی هم بر این کتابشان شرق و تعلیقه زدن فخر المحققین مرحوم کرکی، مرحوم اسفانی، محمد ابن حسن اسفانی، مرحوم محمد جوان حسین آمولی، مرحوم جعفر ابن خضر آل آلشلال شهید اول اینا بر این کتاب کلسه تعلیقا و شروعی زدن مرحوم فخر المحققین حلی متوفی 771 در الفوائد و فی شرح القواعد این بعضی موارد رو آوردند مرحوم شهید اول متوفی 786 القواعد و الفوائد نوشتن در دو جلد که شامل بعضی قواعد فقهی هم هست نه اینکه فقط قواعد فقهی باشه که در یه سری از فنون این کتاب محوریت جدی داشت بعد مرحوم مقداد مقداد ابن الله سیبری هلی فازل سیوری متوفیه 826 ست سال بعد از علامه هلی فوت کرده اون 726 بود کتاب نزد القواد الفقیه رو داره مرحوم احسایی محمد ابن علی ابن ابراهیم احسایی الاقطاب الفقهی علو مزایب الامامیه رو داره مرحوم ابراهیم ابن جعفر ابن عبد الصمد کرکی امامی 940 القواعد داره مرحوم شهید ثانی 969 فوت کردن تمهید القواعد دارن مرحوم تستری شیخ عبدالله ابن حسین تستری اصفهانی متوفی 1021 جامع الفرایت فی شرح القواعد دارن مرحوم نراقی متوفی 1224 ملا احمد نراقی عوای دل ایام توفیش 1249 48 عوای دل ایام فی مهمات عدلت الاحکام داره به طبع مرحوم کاشفلقدا استادش سعی کرده یه سری قواعد تحسیس کنی شاید بعضیش موردن چهل قاعده تحسیس کرده خود مرحوم کاشفلقدا شیخ جعفر متوفی 1228 قواعد و ست داره که دو دوتا قاعدش هم بحث ولایت فقی و ولایت و اینا هم هست مرحوم شبر متوفی 1242 الاصول و الاصلیت و القواعد و شریعت داره مرحوم میر عبدالفتاح های مراقی متوفی هزار کتاب ال... اناوین داره اناوین اصول الاصول ایشان هم قوا... چارچوبه و این اناوین در واقع قواعدیه با یه دستبندی حسنشین دست دستبندی کرده مرحوم استرابادی هزار دویز و شست جعفریه فل قواه دل اسنا عشریه مرحوم محمد حسین کاش القتا کتاب خیلی زیبایی نوشته تحریر المجله نوشته حدود دیویس سال پیش در عثمانی آمدن یه کتاب قانون بر اساس بندهای فقهی نوشتن شماره شماره گذاری کردند و پنج سال طول کشید در کومیتهی بر اساس فقه هنفی عمدتن کار کردن به اسم المجله مجلت الاحکام العدلیه مرحوم محمدحسین کاشف فلق تا متوفی 1373 تحریر المجله را نوشتند که شرح اون رو با نگاهی مرحوم خو... کاظمی القواعد الفقیه نوشتند دانشگاه بصره چاپ شده خراسان هم چاپ شده متوفی 1343 مشهور تا این کتاب به قواعد مربوط به مرحوم بجنوردی میرزا حسن بجنوردی 1395 القواعد الفقیه هم در هفت جلد حدود 63 قاعده به نظرم نوشتن مرحوم محمد تقیه فقیه آملی مدرفی ازان اواخره با قواه دل مرحوم محمد تقی حکیم قواه دل آم و فقیه مقارن با نگاه مقارن بعضی یک مجموعه ال قواعد مجموع مجموعه مؤلفانی نوشتن آی ایروانی کتاب درسی نوشتن آیه شیخ محمد باقری ایروانی دروس تمیدیه فی القواعد ها. خوبه دست در تو تدریس میشه و بعضی بزرگواران دیگه آی محمد کاظم مصطفیوی کتاب خیلی جامع جور نوشتن مع قواعد فقهیه کتاب جامع جور توصیفی مرحوم محمد تقی عاملی ال قواعد نوشتن آیت الله مکارم در دهه چهل که هفتش ده سالم طول میکشه دو جلد قواعد فقیه می نویسن خب چاپ هم شده برای چاپ مکرر شده بزرگ دیگه برای کتاب های زیاد خوبی در دست هست این کتابی هم که آقای سند گفتم سه جلد دارن و بعضی بزرگواران دیگه انشالله دوستان آشنا بشن مروری برای کتاب بکنن خیلی خوبه نکتهی هم که مهم است این که میتوانند دوستان حالا بعد با توضیحاتی که خواهیم داد پایانامه هایی هم به صورت اختصاری در بخش های مختلف فقه و سیاسه اینا قاعده، چند قاعده رو خلاصه از قواعد اختصاصی به وقت بگذارند معمولا هم قواعد در کتابه قواعد خیلی نزد ندارن مگر بعضی هاشون کتاب الا عناوین یه دسته‌بندی داره مرحوم محمد مرحوم شریف کاشانی دو جلد کتاب دارن که المستقصا دارن مستقص قواد فقه اسمشون طولانی و یک کتاب دیگه ایشون سعی کرده بیشترین خلاصه قاعده سازی رو بکنه کتاب یکی دو عنوان کتاب داره مرحوم شریفه کاشانیم طیبا الله ان جلس جلسات بعد ادامه بحث خواهیم داشت والحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد اللهم صل با هلو احنا